شب باشه حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر اگه حبوتوره چن چون بلدی بفهمی اون چشم دل به باز بود واقعا دل ببندی اسمو که دل سبز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 چه خبرها خوبین خوشین سلامтин امیدواریم که خوب باشین ما هم خوبیم این هفته از اونجا که آخرین هفته سال 2015 است و آخرین هفته برنامه ما هم در این سال داریم دفتر اتفاقات مهم جهان در سال گذشته رو ورق می‌زنیم دیروز در مورد حوادث تروریستی پاریس صحبت کردیم و امروز میخوایم بریم سراغ جنگ سوریه و بحران پناهجویی که در سال 2015 روزی نبوده که توی سرخط مهمترین خبرها نباشه سوریهی که تنوع گروه ها و کشور هایی که عملا اونجا مشغول به جنگ هستن اونقدر زیاده که بعضی آدم های این جنگ رو پیشتر آمدی برای شروع جنگ جهانی سوم میدونن که البته الاو البته امیدواریم اینجوری نباشه بعد به دلمون را نمیدیم بیاین امیدوار باشیم که توی سال جدید میلادی قائله سوریهن بالاخره فروکش کنه و جهان بتونه تا قبل از جنگ و کشتار و اینها که معلوم نیست کجا و چه جوری بیفته بعدن یه چرت کوتای بزنه پس همین اول برنامه یه سلامی ار می کنیمیم که اونایی که مستقیم یا غیر مستقیم زندگیشون تحت تأثیر جنگ سوریه و یا بحران پناهنده قرار گرفته و یه هم میگیم به اونایی که تو این شرایط بعد هر کاری میکنن که کمی از رنج و درد آدمای آسیب دیده از جنگ رو کمتر رو کمتر کنن. زرما خوردم شدیدن ایشالا همیشه سالم باشی خورونت برم فضادت بشن تو این حال مریضی هم یاد ما هستی ایشالا زود خوب بشی ایشالا خیلی خیلی ها این روزا سرم خورده و مریضام به خاطر سرما تو خیلی از نقاط ولی خب این روزا مهمترین اخبار هواشناسی مربوط به آلودگی هواس که دیگه از مرز هوشتار و اخدار و این چیزا دیگه گذشته دیروزم کلی در موردش حرف زدیم اما چیزی که میخوام بگم اینه که این وسط یه تعدادی از نماینده‌های مجلس هم دارن انگار از این آب گلآلود برای خودشون ماهی میگیرن دقیق بخوایم بگیم، باید بگیم دارن از این هوای دودآلود برای خودشون کلاغ میگیرن چه جوری؟ این جوری که جمعی از دلواپسان مجلس به قدری به این آلودگی هوا معترض هستن و به قدری به سلامت مردم اهمیت میدن که امروز فرداس به خاطر بی‌کفایتی دولت در کنترل آلودگی هوا کفن بپوشنم جی بیام مجلس. البته خب این خیلی خوبه که دلواپسا انقدر به فکر سلامت مردم هستن ها؟ خیلی خوبه. ولی خب یه چیزی این وسط وجود داره که عجیبه اونا میگن که وضعیت آلودگی هوا در دولت قبلی هم کم و بیش به همین شک بوده حتی در مقام مقایسه و توی آمارها نشون میده که وضعیت اون دوره گاهی حتی بدتر از الان گزارش شده اما در دوران اوس محمود این دلواپسایی که الان دارن یقه پاره میکنن برای سلامتی مردم انگار این مسئله جز اولویاتشون برای یقه درانی نبوده حالا شما این وسط پیدا کنین پرتغال فروش رو دیگه پیداش کردین به مام نشونش بدین با این جور دیگه یه با دیگه دو هوا تا چه حد نه واقعا تا چهت موسیقی موسیقی باشی جون پاسم میو که مری مری کریسمس کریسمس میبره یعنی خود وزیر امور خارجی انگلیس هم نمیدونست با این لحجه تبریح بگه کریسمس رو آره یادش به خیلی پارسال هم خیلی راجع این مسئله حرف میزدیم که کریسمس نداریم ما میری کریسمس میری کریسمس کریسمس آفرین یادتون مونده آفرین کلا تقویت کنین لحجتون رو هم بیشتر و بیشتر بهتر بیشتر اما حالا که قرار سال 2015 رو یه مروری بکنیم بد نیست اشاره بکنیم به یه اتفاقی کمی چند روز پیش اتفاق افتاد و در نوع خودش اتفاق مهمی هم بود و اون سیخونکی نشوندن یه موشک فضایی بود که تا قبل از این خب انجام نشده بود چون تا حالا فقط ها به فضا می‌رفتن از اون بعد دیگه خب مکانیزمی برای نشوندنشون وجود نداشت کارشون رو که انجام می‌دادن هر خوش قطعاتش هر کدوم یه ای از دنیا سقوط می‌کرد و تیکه پاره می‌شد و سرنشینی هم اگه داشت با چت بالاخره یه جو فرود می اومد دیگه ولی الان دانشمندا تونستن همون جوری که موشک سیخونکی به فضا میره همین جوری هم سیخونکی به زمین بنچوننش انگار که فیلم پرتاب یه موشک مثلا برعکس کرده باشن اونجوری خیلی باحال‌ها آقا ما از همین همینجا این دستاورد بزرگ علمی و تکنولوژیکی رو که در آخرین روزهای سال 2015 سمر نشست و خدمت همه مسئولین محترم ناسا و سایر عزیزان کار تبریک میگیم خسته نباشید همگی به به ولی خودمونی ما چه حالی میده آدم به مهندس ها و دانشمند ناسا مثلا یه چیزی تبریک بگه خیلی به حاله اصلا حس خوبی آدم نسبت به خودش پیدا میکن ایشالا سعی کنیم تو برنامه های بعدی هم به اشکال دیگه این موفقیت و باقی موفقیت ها رو بریم پیدا کنیم و از جانب تیم راژیو پس به تیم دانشمندان ناسا تبریک بگیم بچه ها مچکریم ایول داریم مرسی. میاد خوب خواب اگه خندت میاد خوب خواب مهمیستن دیگرون بایی چشمات ببند اون که دوست داره خوب درکش کن اگه زجرت میده خوب ترکش کن هر کی گوشش به هر نیست گوششو بگیر و پرتش کن یه موشش کسیدی بیه یه خنگ و پیبی یه موششت رو تیبی یه موشش نق و نیبی بابا به زواد بیاد دلم دل آزاد میخواد رو قلیونس و هم شب بیدار و همهش کار و کار نخواستیم بابا به بیاد دلم دل آباد میخواد این روزت دارم بد میگذرم گیج جمع ردت میگذرم مثل ماه باش بسه مردمی که مثل جد رو مد میگذرم ماه که توچه دریا به ساحل لذکتره ما هم به طاقه شم عشقی قمت نمیخره به بلا ستار بریم سراغ رادیو پسورده شماره 955 امروز یک شنبه ششم دیماه 1394 میریم سراغ جنگ هفتاد و دوملت در خوابر میانه بکش بکش های منطقه ای به صرف جان و مال مردم بیانی شماره 955 بدانید و آگاه باشید که یک روی جنگ، کشت و کشتار و مرگ آدم های بیگناه و از بین رفتن خانه و زندگی مردم است. اما روی دیگر آن هم دلالان و اسلحه فروشان و متوهمانی هستند که با شلی که هر گلوله یک واحد به میزان درآمدشان اضافه می شود و اینگونه گونه است که بعضی‌ها نانشان را در بدبختی دیگران میزنند و میخورند و به هیچ جای هیچ کسی هم بر نمیخورد. لاکن با این وجود همه ما در ظاهر و در پشت تریبون ها از طرفداران صلح و برای صلح کشت مردگانیم امزاو از تراکم این همه جنگ و بدبختی و بکش بکش و فرار و آتش و گلوله در سال 2015 به خود پیچیده های رادیو پس فرد دا دا, دا. در رابطه با فرمایش دیشب، خواستم عرض بکنم با تمام این اتفاقات تروریستی، با هر کدومش میلیون ها دلار بودجه تخصیص داده میشه به همین سازمان های امنیتی و کلی بالو پر میگیرن، کلی امکانات میگیرن و در این حال دولت دستشون باز میشه برای این که هر کاری که میخوان بکنن این که خیلی سخت نگیر معمولا پشت همه این غذا خود هم سیستم های امنیتی هستن بله خیلی متشکرم از تماستون البته اینکه خب شرکت های حفاظتی و امنیتی بعد از چون این اتفاقاتی رشد کنن و بزرگ بشن و اینها ها قابل درکه ولی اینکه دولت های غربی بخوان آمدانه بیان به تروریست ها بخوان بدن توی کشورشون عملیات تروریستی انجام بدن بعد مثلا بتونن به قول شما از امنیتی و اون به وجود اومده. بیان استفاده بکنن حالا هر کاری دلشون میخواد بکنن یه مقدار دیگه دور از ذهنه حالا از این حرفوه البته میزنن خیلی برحال خیلی ممنونم که تحلیل خودتون از وقایه تروریستی با ما در میون بذاشتیم خانم آقایون شما حتما بهتر از ما میدونین که هر اتفاقی حتی تو خونه آدمم هم که میفته سه سوته میشه علتشو پیدا کرد اما یکی از بامزده ترین جنبه های جنگ سوریه اینه که تو این جنگ همه دخالت دارن هیچ مسئولیت دخالتشو قبول نمیکنه و تازه هر چیزی که اتفاق میفته همه میگن کی بود کی بود من نبودم الان مثلا یه دسته هستن میگن ترکیه عامل اصلی تغذیه و تجهیز دایشه یه دسته دیگه هستن میگن عربستان و قطر پشت دایشه دسته بعدی میگن آمریکا و غرب کار پشت دایشه دسته دیگه هستن میگن حکومت ایرانه که چمدونم میخواد منطقه ملتهب باشه آتیش جنگ رو تو سوریه داغ نگه داره این حرفا خلاصه 17 تا نظریه دیگه در این باره وجود داره اما هیچ کدوم این آدن تکذیب میشه درسته جنگم جنگام قربونش برام سورمورو و گونده ساجای خودش است دائشو 300 تا گروه جنگجو و تروریستی دیگه هم که تو منطقه قاوره میانو و عراق مثل بنز دارن میرن و میان ظاهرا کسی قصد ریشه کن کردنشون هم نداره و بیشتر تلاشا برینه که نذارن بیشتر از این گنده بشن نتیجه این ماجرا چیه اینه که بیش از 200 هزار نفر دقت کنید 200 هزار نفر تو سوریه کشته شدن صدها هزار نفر دیگه آواره شدن خون زندگیشونو از دست دادن بعد تا همین آدمای آواره خونه زندگی از دست داده که میان به کشورهای غربی میگن بابا یه سرپناه به ما بدین تا توی سرمای زمستون یخ نزنیم خیلیشون هاشون ناز و ادام میان که نه ما خودمون مشکل داریم اصولا کلاف سوریه و عراق تو سال 2015 اینجوری بگم انقدر پیچیده و بد شده که اگه شما بخواید یک سال رو به خاطرش سیاه و زشت بدونید هیچ کس ازتون هیچ گلهی نمی کنه. حالا میگید نه سب کنید ساله بعدی بیاد بعد مقایسهش کنید با 2015 ببینید چی میبینید خودتون بچه که بودیم تلویزیون اخبار جنگ بوسنی هرزگوین پخش کرد و یکی از تعلق ترین چیزایی که میشنیدیم خودکشی زنا در جنگ بود برای اینکه مبادا سربازای دشمن بهشون تجاوز کنن بعدتر اخبار زنا در جنگ افغانستان و عراق رو دنبال کردیم و حالا چشممون به جمال داعش روشن شده که تو عراق و سوریه نه تنها به زنا و دخترو تجاوز میشه بلکه اونا رو به عنوان کنیز خرید و فروش می‌کنن کنیز کلمه ای که فقط تو متن‌های قدیمی دیده بودیم و برای پیدا کردن معنی و مفهومش باید گوگل می کردیم. راستش وقتی به خرابی های جنگ چه خونه های مردم چه بناهای تاریخی فکر کنیم غیر از آرزوی پایان جنگ به بازسازی هم فکر می‌کنیم. و اینکه چطور قرار روحیه پریشون از جنگ و مرگ و میر و تجاوز این زنا و مردا و بچه ها ترمیم شه به امید اینکه منطقه روی خوش به خودش ببینه و مردمش تیکه تیکه های روح و رو جمع جور کنن از نو بسازن سلام فرشی من قدرین زنگید منم یه کار قشنگی که این روزا توش شهر من شاهدش بودن تاسیس ایسکای مهربانی اینجوری که یه یخجال شیشدار رو گذاشتن هر کسی که دلش میخواد توش قضا میذاره برای اونایی که احتیاج دارن جالبش این بره. بود که اکثرا این خالی بود ولی امشب و دیشب که به خاطر کریسمس میبینم که تا جایی که جا داره پر از قضااست واقعا چیز قشنگ و جالبیه ان هممون به فکر مستمند باش خداحافظ فرشیدم خیلی ممنونم ای اسمتونم فرشید بود به به چقدر به عالی خیلی ممنون خیلی خوبه آ یه ایده خوبه وقتی ببینید چقدر میتونه آدم ها رو به هم نزدیکتر کنه این هم یکی از اون اتفاقاتیه که حالا میشه گفت در سال 2015 یا حالا سال 94 شمسی شاید اتفاقاتی که تو ایران افتاد از دیوار مهربانی و حالا هم شده یخچال مهربانی امیدواریم این مهربونی ها اونقدر زیاد بشه که دیگه هیچ جا کسی نیازمند نباشه دم مردم غزبین هم اما این هفته ازتون پرسیدیم که مهمترین اتفاقی که توی سال 2015 برای خود شما افتاده چی بوده؟ یا اینکه توی سال گذشته میلادی چه اتفاقی بیشتر زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داده حالا گفتیم این اتفاق میتونه یه اتفاق توی زندگی شخصی تون باشه یا چه میدونم یه اتفاقی مسئله مثل مثلا توافق هسته‌ای باشه یا مثل اون که به شکلی روی زندگی شما هم تاثیر گذاشته باشه این هفته ما براتون از اتفاقای مهم جهان در سال گذشته میلادی میگیم شما هم به ما از اتفاقات مهم سال 2015 زندگیتون بگین ضمن با توجه به اینکه در ایام کریسمس و سال خارجی دستیم. به ما بگید وقتی که این روزا میرسه چه بهتون دست میده آیا مثل امام اممت جوابتون به این سوال هیچیه یعنی هیچ حسی ندارین یا مثلا یاد فرنگ و خارج و چیزهای قشنگش میفتین و یاد بابا نوئل میفتین رفیق رفقهای ارمنی و مسیحی هم که الان به حال روزای جشن و سرورشونه به اون بگن در چه حالا چه خبرها حالتون رو خریداریم پلاتون یه کامنتی توی فیسبوک دادن بهرام بهرام ای توی فیسبوک کامنت داده برامون آقا جم کن این نن من غریب بازیا برای پاریس و ترور در پاریس تو که برنامه سیاسی نیست سواد سیاسی هم که اگه داشته باشی به درد برنامه تنزد نمیخوره پس چرا علکی به این موضوعات زرد میپردازی خیلی معنونم اولا بهرام جان به خاطر کامنتت بعد نن من غریب اولا با غین نه با بیش بعد این مسئله تروریستی و کشی شدن آدم آمین هم تا جایی که من میدونم مسئله سیاسی نیست م? ما فردا تازه مثلا امروز و فردا میخواییم تازه بریم سراغ سیاست تو سال 2015 سه با من مطالب سیاسی از کی تالو جز مطالب زرد طبقه بندی شده ما خبر موندیم نمیدونم حال ممنون از پیامت و اما بریم سراغ سعید سعید از ایتالیا یادتونه برنده لیگ رادیوی پس و کاراموز رادیو پس دیروز به ما پیوسته و امروز هم اومده تو استودیو سلام سعید سلام چطوری مرسی خوب خوبی؟ آره چقدر صداش خوشگله من چیکار کنم آقای صداش خیلی قشنگتر از منه دیگه هیچ چی دیگه میای جای من میگیریم میام امروز فردا دیگه چه خبر خوبی خوش می‌گذره سلامتی مرسی خیلی خوش اومدی متکرم. مرسی منم ممنونم سلام میکنم به همه شنونده های عزیز رادیو پس فردا امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید من همین دیروز رسیدم پراگو کنار گروه صمیمی پس فردا دیگه کارآموزی شروع کردم فعلا دارم با روند کار بیشتر آشنا میشم و به قول معروف دارم گرم میکنم جوری سخت از اون چیزی که فکر میکردی سخته چون اون دفعه که اومده بودی که مهمون بودین و خوش خوشان بود البته خب خیلی هم کار کردیم ولی این سریف میکنم از دیروز که اومدی کاملا در جریان تمام اتفاق بود تمام آره چرا آره. سختتر از اون چیزی که فکر میکردی خب سختره به خاطر که دفعه قبل ما فضای باز کاری داشتیم و میتونستیم خلاقیت به خرج بدیم واب خب نه اینکه الان نباشه ولی الان با روند کار بیشتر و بشم که شماها چطوری کار میکن تا بتونم. به جای. مرحبی خلاقیات آه. هم میرسیم دیگه برسیم. اصلا هم برای همین اومدی اینجا دیگه <تصفيق> ممنونم و خیلی خوشحالیم که به ما پیوستی الی هم برسیم. به ما کم کم خواهد پیوست حالا که اومدی این راه های ارتباطی رادیو پسفردارم با اون صدای قشنگت بخون که بله. من خسته بله. شدم انقدر اینها رو خوندم تکراری شدیم راه های ارتباطی رادیو فردا ایمیل پسفردارات دو صفر چهارصد و بیست ششصد صفر و و و تلفن ها دو 420, 22, 11, 24, 133 و بیست بیست و و صد وایبر واتس تلگرام دو صفر چهارصد meri last night is supposed you come خانم ها آقای اون دختر خانم ها آقا آقای پسرها احتمالاً بعضی‌تون مصاحبه رضا پور با حاج آقای شجونی رو شاید دیده باشین که ایشون از یک به بزنهای جناح خیلی خیلی خیلی تندرو هستن اگه کم شل کنید خدا آقاشون هم کافر می‌دونن ایشون یه نقطه‌ای که خیلی بامزه بود توی این مصاحبه ماجرایی بود که مال دوران قبل از انقلاب و مبارزات آجاجا شجونی توی اون دوره بود قصه این بوده که ظاهراً اون موقع‌ها ساواکی بار هاجاقا شوجینی رو دستگیر میکنه میبره توی یه خونه ای و ها یه چمدون بزرگو میارن جلوی و... آقا این چمدان رو وارونه کردن روی میس. اون میز دیدم پر شد این قد عکس بنده با یه خانم بله ماجرا از اینجا جذاب میشه حالا فکر میکنید که عکس العمل هاجاقا چی بوده از دیدن این عکس ها با اون خانم گوش کنید ویست بله گفتم اینا خیال کردن شجونی دیوانه شده گفتم بله گرگ یوسف ندریده دهن آلوده گرگ یوسف ندریده دهن آلوده بله پا شدم، پا شدم، پا شدم. یه زرم بعد اومدم حیات اینه دنبال من اومده. رفتم تو حیات همون ساوا. اومدم تو کوچه. اینا گفتن این دیوانش بله، بله، تو تو کوچه میشون من نگاه کردن تا آمدم سر خیابان. و آمد. کاری هم نداره شما همینجوری اومدین. تو اصلا آقا دو قدم دنبال من آمد بعد دیگه نیامد. تاکسی رو گرفتم، رفتم, رفتم راست منزل آقای مرحوم فلسفی. بله، و همین راحتی آقا شجونی همونجا انر انر رو افتاده، مغر اومدم بیرون بدون که هیچ کس بگه به چند کجا میری چون بینید سواک اون موقع ظاهراً مثل پلیس فتای الان حواسش به همه چیز نبوده اینجوری مثل که اینه که کماندو هایی مثل ایشون همجوری میتونه سدس ساواک برقرار کنن به همین راحتی. حالا خلاصه ایشون میرن پیش آقای فلسفی که ظاهرا استاد ایشون هم بودن و همون اون, اون خانومه همون اون خانومه که گفتیم هم یه سری عکس مشابه هم با آقای فلسفی هم مثل که انداخته بوده. حالا ما اولش فکر میکردیم ایشون رفته پیش آقای فلسفی گله کنه بگه هاجی یعنی چی؟ چرا شما رفتی با این خانومه که ما باهاش مثلا بله و اینا و اونا و از اون و آقا فلسفی ظاهرا حال و روز شجونی جان رو که میبینه شروع میکنه به دلداری دادنشون گفت آقا به غلط کردن، اون کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده، سلمان فارسیه میره تو مستراب چنین چنان میکنه، غلط کرده اون کسی فیلم گرفته، انبیا هم لخت میشدن، میرفتن تو بستر زناشویی، گفت گفت گفت گفت، گف. قوت قلب، گفت آقا این مونتاژ کردن، الک کردن، داغون کنن تو را الک کنن، بله از اینجای داستان بذارید ما هم یه الک کنیم و بریم از دید آقای پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک به ماجرا نگاه کنیم که تو کتابشون در این بار مفصل سال توضیح دادن ایشون گفتن که ساواک برای بدام انداختن آقای شجونی و فلسفی و سه تا از روحانیون دیگه‌ای که اون موقع بالای منبر خیلی تیپ مرد خدا و الگوی اسمت و عفت و تقارنت و اینا برداشته بودن برنامه‌ریزی داشته یه خونه‌ای رو حسابی میکن میکروفون کاری و دوربین گزاری کرده بودن و یه خانم خوشگل مشکل ترگل ورگل هم خب عجل کرده بودن بره به عنوان اینکه مشکل شرعی داره به این هاجقاهای پاک دامن نزدیک بشه خلاصه خلاصه‌بکشادتشون تو اون خونه و خانم مورد نظرم در هر پنج مورد به گفته آقای ثابتی موفق بوده هر پنج تا روحانی هم به هر حال رفتن خونه ایشون اون خانم هم خلاصه‌ای ازشون پذیرایی کرده اونام چی در زمینه هدایت این خانومه کم نذاشتن حسابی هدایتش کردن و مشکل فقط این بوده که تو اون خونه یه عالم دوربین و میکروفون و اینا این هدایت کردن آقای رو ثبت و ضبط کرده خلاصه اینه که آج آقای شجونی رسمان یه جورایی تو این مسابقه اعتراف بکنه که حال روحانیون هم دل دارن دیگه درست مثل همه ما مگه آخون کیه؟ اخون همین فرزند مشته حسن و قبل الحسن و حاجی فلان زندگی اون... شخصی داره زندگی ممكن. داره زام میگیره سیغه میکنه بله سیغه به خصوص خیلی مهمه در زندگی اخون جماعت منتها مسئله اینه که توی این مصاحبه مصاحبه گر و چند بار تلاش میکنه از زیر زبون آقاغای شجونی بکشه که این عکس ها مونتاژ بوده یا نه مونتاژشون خیلی شیک و جالب از زیر جواب دادن در میره هر دفعه مونتاژ کرده بودن این هر اکسار. چی کرده بودن نه حاجا عکس شا... مونتاژ کرده بودن ارز میکن الان منتاج رو میگه. من میگن بقی پس ها ها نبودن واقعیت ببین مونی که به فلسفی نسبت دادن گفتن واقعیت بله خب اینجا الان آقای فلسفی رو قبول کردن که رفته بود پیش اون خانمه مونتاژ بالاخره در مورد خودشون فرمودن که من راجع به خود شما می خوام بپرسم عکس‌هاشون مونتاژ بود یا واقعیت داشت ان شاء مونتاژ بوده ای که ایشون اینجا گفتن تو مایه های هم ان گربه بوده معروف ها من از سامی جان میخوام که اون صدای قبلیشون رو یک بار دیگه اینجا پخش کنه کیه اخوند همین فرزند و قبل الحسن و حاجی فلان زندگی شخصی داره زندگی داره زام مم... میگیره سیغه میکنه بله خلاص خانوم اون این عزیزان هم هر چند خودشون رو نماینده خدا روی زمین میدونن و ما آدم‌های غیر اخوند رو یک مش انسان جاهل و بی سوادی که باید همه امورات زندگیمون رو با اونها چک کنن اما خب اونام دل دارن احساس دارن حالا تمسین مثل این،, این مورد وقتی پای یه خانم که مشکل بیاد بسند خب چیزایی دیگه هم دارن حالا بحثش در این مقال نگنجد خلاصه سه اینجوری است. براسین روحانیت هست که نظام مقدس جمهوری اسلامی را زنده نگه داشته است. فریبورز غریب سلام سلام سلام به هنگی فرشید اجازه بده یه خوش آمدم به سعید جان بگم و بخوامم زودتر تیمشو معرفی بکنه چه ایرانی چه ایتالیایی بله تیم چیشو معرفی کنه تیم فوتبال ایتالیاییشو <تصفح> <اتاره دیگه. تصفح> تیمش احتمالاً بعد یکی از تیمای ایتالیایی باشه حالا ازش میپرسیم فریبورز موافقی اول از بهترین بازیکانهای فوتبال جهان در سال 2015 شروع کنیم ا چند و خبرگزاری معتبر جهان فرشید فهرست برترین بازیکن‌ها رو منتشر کردن تو این ایام که تو بیشترشون لیونل مسی همون ماهی لیز آرژانتینی که تو تور هیچ مدافعی گیر نمیافته در صد جدول قرار داره اما مراسم رسمی توپ طلا هم دو هفته دیگه برگزار میشه که این بارم اگه مسی این جایزه بگیره با 5 تا توپ طلا رکورددار تاریخ فوتبال میشه بسیار خوب، از کشور خودمون چی فری برز توی برانکینگ 2015 اصلا هستیم؟ هستیم، هستیم، فرش جان تو رشته های مختلف و آدم و و های مختلف تو این چند روز هم بهش میپردازیم اول از تیم ملی فوتسال دخترای ایران بگم که تو فهرستر بهترین های AFC سی که تازه منتشر شده برای سال 2015 قرار داره که یه افتخار بزرگی میتونه واسه دختر راه سالونی باز باشه. به به مبارکه مبارکه. خب بریم سراغ خبرهای دیگه. دو تا خبر جالب و بامزه امروز داشتیم فرشید از تیم تراکتورسازی. یکی این که بختیار رحمانی که سربازیشو ترین تیم میگرونه به پادگان صرف واسه شش ماه اضافه خدمت و دوم فول بازیکن خارجی ترکتور ادینو رو که قرار استفاده بکنن، قرار یه آدم خیر مدرسه ساز فداقت کنه. عجب ها بزنن طرف مدرسهش بسازه خب ساز خوب یعنی چهاقه یکی هم داره باز خودش کار درست میکنه میگیرم یاش تو فوتبال پولاشو بریزه دور عجب بله،, عجب. بله بله بله هریجان <تصفيق> پرزنده ورزش ها امشبم واسه یه شییک کاام شینی شدن کام شنونده ها با صحبت های آقای چپفااشیان ها میبندم که در واکنش به شایعه گم شدن چه هزار دلار پول نق در فدراسیون فوتبال و شای گم شدن کالسکیرش اینجوری گفته بشنویم. نه هیچ پولی جا بجا نشده تمام پولای فدراسیون سایجاش هستش این شایعات هستش آقای کروشال دمورخصی هستش ما با مکاتباتی که با داشتیم داریم تاریخ یه سری مسابقات دوستانه رو صحبت می‌کنیم حقوق ایشون رو در واقع پرداخت کردیم و ایشون هم تشکر کرده به ما دائما با ایمیل ارتباط هستیم گم نشده ایشون در روی کره زمین هست خب خدا رو شکر خیلی وقت خیلی دارن تلاش می‌کنن خود این آقای کفاشیون یه جوری گمش کنن من تو خب خداییش خوب دما بود اومورد و تعالی آفر بود آره سر نخواستنش در واسطه <تصفيق> ممنونم از عبد فرید روز غریب بود خداحافظی می‌کنیم تا فردا. تا فردا خدا نگهدار. Just before you talk about dance at do the boogie all night long, stormed in paradise to talk about it. با سلام بی یک شنبه شب را ضمن وحشت از هشتارهاوی جدید به خاطر احتمال وقوع عملات تروریستی در پاوی اروپایی با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می تلاش سازمان ملل برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه در روز 25 ژانویه و نظر کارشناسان با این مضبون که بزرک بهار میاد کنموزه با خیار میاد از نظر حسن روحانی با این محتوا 84 درصد خشونت و آدمکشی جهان در دنیای اسلام صورت میگیرد و نظر ناظران که البته در جهان اسلام همه به هم آلاقمند و خواهر برادرن ولی حالا یکم عصبانی می خون خونجویی ششاشون میگیره و تلاش موختار قطر برای تامین خاک مورد نظرش از ایران و نظر فعالان ارسه‌ی خاک این غطر همین گاز ما رو که از اون زیر کشید برد. حالا یعنی به خاکمونم رحم نمیکنی. کنه؟ <تصفيق> سرکیت مهمترین خبرهاوی امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروح خبرها با همکارم بوی بلی. <تصفيق> با سلام سخنگوی صداد مبارزه با مواد مخدر گفت قیمت هرم اسغال تریاک بیست هزار و, و تومان در خورده فروشی بوده که امسال 38 درصد و در عمد فروشی 8 درصد کاهش قیمت نسبت به سال گذشته داشته است. در همین رابطه یکی از کاشناستان امور تورمی کشور به خبرنگار ما گفت مسئولین باید تلاشایشان در زمینه کاهش قیمت تریاک را در کاهش قیمت باقی اقلام مصرفی و غیر مصرفی نیز به کار تا در آینده نزدیک علاوه بر کاهش تورم تریاک شاهد پایین آمدن قیمت شیر، پنیر، برنج، گوشت و باقی اقلام مورد نیاز مردم نیز باشیم پایان محشوه خواد اما جنگ سوریه توی سال گذشته میلادی چند لشکر از آواره جنگی و پناهجوها رو روانه اروپا کرد که به دلالی که ما نمیدونیم بخش زیادی از اونا ایرانیا و افغان ها بودن اصولا بعضی از ما خب استعداد غریبی توی موج سواری داریم کلن کافیه یه موجی را بیفته بودو این بریم به اون موج به پیوندیم خب موج پناهجویان سوری هم از این قاعده مستثنا نبود به هر شکلی که بود دولت های اروپایی که در ابتدا آغوششون رو 180 درجه به روی این موج پناهنده ها باز کرده بودند، هر چی که بیشتر گذشت و جمعیت بیشتر و بیشتر شد و اومدن سمت اروپا این زاویه ای آغوششون همه از 180 درجه کمتر و کمتر و کمتر شدم اومد رسید به 160 و هم 120 و 90 و 60 و الان دیگه کلا زاویه آغوششون بسته شده دست به سینه با باطوم سیمخواردار و ایستادن جلو مرزشو. به هر حال ما امیدواریم این جنگ سوریه و های ایران و مشکلات افغانستان و اینا هر ستاش با هم یه جا ریشه کم بشه و کشورهای اروپایی هم آغوششون رو برای خودشون نگه دارن و کلان همه برگردن سرخون زندگی خودشون به خدا والا عصاب نمیذارم برای آدم نوسی یه جا. برنامه سه ساعته اجرا کردی کلاً دیگه بستی رفتیم مرخصی و جوجه کبابو بابا برنامه رو خراب ما مردیم تو آلودگی خدا آخه, آخه چ... کدوم مرخصی چی میگه ما که اومدیم که توی... الان اینجام پس ما الان چه کار می‌کنن همون روز سه ساعت برنامه ریزی کردیم فرداش اومدیم یه ساعت برنامه ریزی کردیم دوباره دیروزم اومدیم امروزنم اومدیم من جوجه که باد نمیزنم برنامه است دیگه برنامه اجرا آقا واقعا این آلودگی ها تاثیر منفی و تاثیر بدی رو مردم گذاشته من به نظرم این تاثیرات چیزام هست یعنی رو ذهن و اینا هم تاثیر علاقی گیر میدن با آدم خیلی به ممنونم از تماستون تو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 حدیث میدونه 5 تا آیه و تفسیر و روایت میدونه شیشتا تا نکته اخلاقی میدونه پنجتا تا مطلب از چهارتا تا آدم شنیده که اینا چجوری جوری به اعتقادی خودشونو بالا برده بودن و بد معنوی داشتن مردم حتی متدینین امروز بلند میشن میرن پیش روانشناس روانشناسی که درس کیو خونده صد نفر رو میشناسه که این صد نفر یکی از یکی کسیفتر و آلوده‌تر زندگی روانشناسا رو بخونید فروید کارن هورنای، دختر فروید اریک اریکسون، جان پیاجه، آبراهان مازلو، راجرز، بقیه از از به این طرف. بله، یعنی چکیده فرمایش ایشون اینه که مردم چرا بجن اینکه که برن پیش روانشناس به روحانیت مراجعه نمیکنن و ظاهرن روحانیت حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و نمیدونم همه اینا کمش بوده خب میخواد در حوضه های علمی هم ورود به دیگه. و بابا بابا بابا کجا چه حلال زدان بودند سلام علیکم اجاغا سلام علیکم و روان شناسی سلام علیکم بفرمایید من در خدمتتم در خدمت چی هستی اجاغا همین که دوست بزرگوار و دانشمند فرزانه ما الان بله بله. فرمودند که شما هر مشکلی دارید از نظر روحی و روانی روحانیت میتونه اون رو برای شما حل بکنه تفضل دو... ها <تصفح> باز فال گوش وایساده بودین جلو در حاجی حالا ما همیشه فال گوش وایم است لطف می‌کنی لطف می‌کنی بله. خب درباری حرفای آقای عباسی بله. گفتن مردم بعد برن پیش روحانیت برای مشکلات روانیشون نظرتون چی حاجی ایشون کاملا درست گفتن دیگه این مساله 100 صد درصد از مسلمات ده خب باشه حاجی الاصل شما فرض کن حالا که اومدی من کسی هستم که مشکل دارم نیاز به مشاوره دارم اومدم خدمت شما شما چه جوری می‌خوای مشکل من حل کنیا خب هر چیزی مم. مراحل خودش رو دیگه اول حقل ویژیت هست که باید پرداخت بشه با کارت پرداخت میکنی <تصفح> یا نقدی پرداخت <تصفح> آجیبه <بابا> و حق ویزیت <تصفح> چیه دیگه و حالا الان من بخوام مثلا با کارت پرداخت کنم شما بقعید چیکار کنیم بله. میکن؟ مخ... بفرما این هم تصویح کارتخال کلاجقا حالا باهاش خیلیقول بعدا حساب میکنیم الان که داریم مثال میزنیم زنیم آج جان الان حال مثلا ندارم که؟ مگر روحانیت بیکاره بیایه به تو مشاوره مجانی بده، بله مزاحمت کشیده ایم، درس خونده ایم، استهلاک داشته ایم، با کارت یا نقدی، خودمون مریض داریم باید برا. بیا حاجیجان، بیا، بچون شده سانی. ها این... نقدی میده. بله, بله بله من نقدی دارم. بفرم. بله. بیا. اینو خدمت شما بفر دیگه همون کافیه دیگه بده. جدت. بیچاره جدت. پول نداره ای ای که این چه طرز صحبت کردن آخه ای. بله دیگه نحوه صحبت هم بستگی به ش... میزان ویزیت داره دیگه شما همین مبلغ رو دو برابر بکن ببین بنده تر میشم نه خیلی متشکرم چیز... ممنونم همین بله بگو گفت تو ما باید بریم کار داریم دیدم بگو عرض میکنم حاجی من راستش یه ب... مدت خیلی عصبی بله و بله. پرخاشگر شدم زود از کوره در میرم دعوا میکنم نمیدونم چه شده چیکار باید بکنم بله مشکلات رو روحانیت درسه شوت برات حل میکنه جدی برات یه ذکر مخصوص مینویسم حاجی هر وقت عصبانی شدی سه بار زیر لب رو میگی تمام دیگه اون کاغذ و قلم رو بده با دون روح با دون روح چرا بدخطی داری می‌نویسی؟ بیا ببینم. قل اه دا... دا... اه دا... دا... لا... چی چی؟ هاجی لا... لا... من نمی‌تونم بخونم این م... چیه؟ اون من... بلند نخوان اون را این نسخه رو مخصوص خودت نوشتم. دیگرین را رو بخونه ساید افکت ممکنه براش ایجاد بشه. اوه وارد شدی یا ناقلا. ساید افکت از کجا یاد گرفتی؟ این نصف المومنن برای تا... ما کلاس زبان گذاشته دیگه شکر خدا به کارمون هم میاد. آفرین آفرین اسفی. آره. باشه در حال این بدخطال بعداً برام بخونید. ما چلو دست خطتونم خیلی دکتوری شده دیگه ها بله ما هم همونطور که استاد ابباسی گفتن به نوع دیگه دکتر ممنات وانگر شد ممننین هم بله هستم حاجی من یه مشکل دیگه هم دارم اینم بگم مشکلمو چقدر مشکل داره تو ملعون زود ببینم بگو دیگه به هر حال راستش حاجی من حس میکنم توی محیط کارم ارزانه نمیشم میشه. خیلی اون انرژی رو که میخوام نمیگیرم اینو باعت... بله غلط فهمید آره. مردونه میشه اجازه بده من اینو این مشکلت رو روانیت درست سوت برای شما حل میکنن بیا حاجین چیه؟ آلبوم رو نگاه بکن آلبوم برچ رو میخوی این خانوم ها چی این حاجین؟ ای. این عزیزون برای ارضا نشدن در محیط کار کار بردارن دیگه اینا نه با محریه کم و غیر اندلمطالبه هستن خودمون هم تضمین می‌کنیم صد درصد. حاجی من منظورم یه چیز بله؟ دیگه بودا. من اصلا... منظور شما را ما چ... میفهمیم مل اون حرف نباشه. ب... بله. یک سیغه پنج ساعته برای شما میخوانیم با مهری کم در سر هم آه. نداره دیگه. حرفش چی؟ توصیه روانشناسانه من یه واقعا آخه من اگر چ... این چیزها رو میفهمیدی که می جای بنده مینشستی دیگه. معلومه که نمیفهمی یک از دلایل شادابی روح و جسم روحانیت عمل به همین مسائل ساده بله بله خیلی متشکرم مرسی حاجی جان بردن. واقعا هم که روحانیت همیشه شاداب هستن بزنم به تخت زیر 120 سال هم عم نمی نمیکنن البته من ترجیح میدم برم پیش همون های به قول آقای دکتر عباسی فاسد و اینا تا که رفتم به این ها شما عمل کنم مرسی حاجی جان مرسی خیلی لطف کردین موبایلتون هم جواب بدین بله بله واقعا مشکل ارجان سدره حاجی جان جدی میفرمایید ماشین بفروش برای ما بریم به بالنش دیگه بله بله آلبوم ها ما هست بله زود بفرستی ها همه جا میذاره بله بله. آقا آن فروشون عزیز ما حتما باید بفرمایید دیگه حاجی ما کار داریم لازم ما. رو تامین بکنم تفضل, بل تفضل بل بفرم دیگه. بفرم بله بفرمایید بله. بفرمایید خیلی خوش اومدین حاجی الان برسونیم در خدمت هم هاجاقا آن هم نا شما خدا نگهد خدا حفظتون آیا از افسردگی رنج می‌برید؟ آیا در تنظیم رابطه خود با دیگران دوطور مشکل هستید؟ آیا... بردار ما هم نگه... اما را که تو گفت... چشمه فرماییم... را... آیا در رابطه زندگانی خودتان مشکلی دارید؟ چه مشکلی دارید؟ به روانیت بگوید دیگه چه مرگتانه؟ دفتر مشاوری روانشنسی حاجقا دکتر این دلمومنین با سالها سابقه در خدمت شماست رفع مشکل افسردگی در آقایان با پیشرفته ترین متود سیغ درمانی. درمان کلیه ی روانی مانند واسواس پرخاشگری و ترس با دعاها و ذکرهای مخصوص درمان کلیه اختلالات رفتاری بچه از شب ادراری تا روز ادراری با متود توسری و چوب و فلک کلن یک میزنیم بچه بند بشه حل بشده. مشکلات زن و شویی و مشکلات زوجهای جوان با منبر خصوصی احکام در خانواده همین امروز بیاید ثبت نام کنید دیگه پیش این روانشناس های فاسد که درسهای غربی ها رو خوندن نرید دوای درد شما، دنیا و آخرت شما، همه چیز شما در دست روحانیت بیاید اینجا، تفضل، تفضل دفتر موشاوری حاجاغا دکتر اندل مومنین بهتر از هر روانشناسی روی زمین احسنت، احسنت، برخوهر غناری <تصفيق> از خطاهی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد کامران ملکموتی سلام بزن بریم سلام فرشیم سلام همگی اولین خبرم در رابطه با تنکار مهران مدیری یعنی در حاشیه دوه اینکه هنوز پخش نشده که کسی اعتراض کرده؟ نه هنوز کسی اعتراض نکرده اعتراض هم چون ماجرا تو زندان می گذاره. اما امروز مم. بالاخره تاریخ پخشش یعنی پخشی درها شیردو مشخص شد که دوازده هومه دیما یعنی شنبه هفته آیندست بخشی از صدای یه سریال با هم بشنویم من بیشتر بعدان توضیح می ده بشنویم ما چهار نفر بودیم تیمونه بین وینی پس بالاخره این گرگ پیرم به دام افتاد بزن و بخو من مواد میتونم جاسوس کنم ببرم کانکوکو پشت که خنجری بهت میزنه از جات بلند نشی بخشه من اسپانیایی ایتون هم خوبه نسیت نتراتسیا ترواتسیا نتراتسیا ترواتنیو سینیا اوتو کچنگا میمارستان اونچی پاسمبود نی یه یه باد میزنه خاطره اونم شیش نیمه کنه. بخش از صدای سریال دراشیه دور شدیم به کارگردنی مهران مدیری خب میگفتی کامرا بوسی کاری اصل سریال همون شخصیت‌های قسمت ها. اولاً چند تقریبا همونان چند نفر حذف شده اما شبکه سه اعلام کرده که مدیر قرارداد برای 90 قسمت امضا کرده سی قسمت عقب شده این این هم سی قسمت ها. اگه مخاطبین راضی باشن کسی شکایت نکنه سی قسمت یا فاز سوم اون وقت تکی نشمالو و ساخته میشه این در سه رو بعداً میسازم بله بعد دیگه فاز سه به سلامتی اما خبر در رابطه با موضوع برنامه چی داری ولی خبر راجب خودم فریبان گفتش که اون ایف سی بود کی بود اون قراره معرفی کنه الان که ایف سی معرفی که از من در اومده نفره <تصفيق> در سالی که گذشت دنیای سینما هم به هر ستارایی را از دست داد که میتونم به چند تایی اونا اشاره کنم راد تایلور بازیگر فیلم پرندگان هیچکاک آنیتا اکبرگ بازیگر زیبای سینمای کلاسیک معروف سینما. عمر شریف بازیگر مصری کلاسیک با فیلم دکتر جیواگو معروف شد و جیمز هورنر آهنگساز مشهور هالیوود که برای 127 به فیلم معروف موسیقی ماطن ساخته از جمله آواتار، آپلو 13، ذهن زیبا و تایتانیک. اینا کسه بودن که سال میلادی گذشته از, از دنیا رفتن. از دنیا رفتن. ممنونم ازت کامران عزیز، با خدا حفظی می‌کنیم تا فردا و می‌ریم یکی از کارهای آهنگساز جیمز هورنر رو می‌شنویم که فکر کنم برای همه آشنا باشه. My dreams. I I feel you, that is how I know you go. Far across the distance and spaces between us, you امروز به نقل از مرکز آمار ایران تیتر زده بود که کار روزانه ایرانیان دو ساعت و 5 و2 دقیقه حسسه نباشیم همهگیری حلاک کردیم خودمونا. روزنامه آفتابه ای از از قول سردار نقدی امروز تیتر زده بود که می توانوان در ایران یک میلیارد نفر را غذا داد. با شما همین هفتاد میلیون نفر رو گشنگی ندین نمیخواد یک میلیارد نفر رو غذا بدین بالا روزنامه رسالت به نقل از محمد رزا باهنر دیروز تیتر زده بود که سران فتن تصمیم گرفته بودند جمهوریت و اسلامیت نظام را از بین ببرند راست میگه دیگه سران فتنه اصلا برنامه داشتن نظام پادشاهی مشروطه رو در ایران دوباره احیا کنن محمد علی شاه قاجار دوباره بیارن سر کار باور کن سال میلادی که گذشت خیلی از آدم‌ها از ترین حق خودشون یعنی داشتن یه سرپناه هم محروم شدن. سالی که گذشت به گواهی همه اونایی که به دنبال پناه تو دریا غرق می‌شدن، به شهادت اونایی که توی مرزهای غریبه به خاطر داشتن یه لحظه آرامش و امنیت دست و پا می‌زدن، برای انسانیت سال خوبی نبود. سالی که گذشت بذارید ادامه ندیم این همه تلخی رو، بذارید مثل همیشه رومون و امیدمون رو به آینده باشه به امید این که دردهای سمجی که بشریت رو مبتلا کردن هر چه زودتر درمون بشن و درد غریبی و غریب موندن به یاد و خاطره ی تلخ و قدیمی تبدیل بشه شبتون خوش غریبی و تلخی از زندگیتون دور تو غریب من غریب هر دو خانی از فریب منو با خودت ببر ای غریب ای نجیب من اسیری لازو لحظه, ها لحظه های بی تپش دشته محبتا بسرا به سرم دستی بگرش من جو میں اس لے حیم اردومون زو تے بیا دنیا ساده برای دنیا جا ساختافنده مازار ما زود پری پیففی حود باشیم بیا از این جافری. باد و رنگی نباشه عشقشون رو سکی دلی سنگی نباشه حالا باید کاری کرد پرست دوباره نیست باید این راه بریم چه کنیم که چار نیست